نوزده پس از آن در کامیابی زیستند. 500 سال اخیر شاهد مجموعه از انقلابات مهیج بود. زمین به یک کره واحد زیست محیطی و تاریخی بدل شد. اقتصاد رشد تصاعدی داشت و بشر امروز را از ثروتی برخوردار کرد که تا پیش از این در افسانه ها وجود داشت. المو انقلاب صنعتی به انسان نیروی فوق بشری و انرژی عملا نامحدودی داد. نظم اجتماعی هم همچون سیاست، زندگی روزمره و روان بشر کاملا دگرگون شد. اما آیا اکنون خوشبختریم؟ آیا رفاهی که بشر طی 5 قرن اخیر به دست آورده میتواند به یک خرسندی جدید تعبیر شود؟ آیا کشف منابع بیپایان انرژی دروازه‌های سعادت را به روی ما می اگر به عقب بازگردیم و نگاهی به این دوره بیش از هفتاد هزار ساله پرتلاتم بعد از انقلاب شناختی بیاندازیم، آیا دنیا مکان بهتری برای زندگی شده؟ آیا نیل که جای پایش بر کره بدون باد ماه باقی ماند از شکارگر خوراک جوی و نشانی که در سی هزار سال پیش اثر دست خود را بر روی یک دیوار در قار شوه باقی گذاشت سعادتمندتر بود؟ اگر نه پس مزیت به وجود آمدن کشاورزی بر پایی شهرها، ابداع خط، ضرب سکه، امپراتوریها، علم و صنعت چه بود؟ مورخین به ندرت چنین سوالاتی را مطرح می کنند. آنها نمیپرسند که آیا شهروندان اروک و بابل شادکامتر از نیاکان خوراکجوی خود بودند یا آیا ظهور اسلام زندگی مسرت بخشتری به مصری ها داد یا چگونه فروپاشی امپراتوری اروپایی در آفریقا موجب سعادت میلیون نفر شد؟ اما اینها مهمترین سوالاتی هستند که می از تاریخ پرسید؟ اغلب ایدولوژیها و برنامه های سیاسی رایج بر اساس اندیشه های نسبتاً سستی درباره منشأ واقعی سعادت بشر بنا شدند. ناسیونالیست ها گمان می کنند که استقلال سیاسی برای خوشبختی ما تعیین کننده است. کمونیستها ادعا می که هر کسی تحت دیکتاتوری پرولتاریا خوشبخت خواهد شد. کاپیتالیست ها اعلام می کنند که تنها بازار آزاد می تواند با رشد اقتصادی و فراوانی مادی و آموزش عمومی به عنوان زمینه ای برای اتکاب خود و اشتغال بیشترین خرسندی را برای بیشترین تعداد مردم فراهم کند. چه اتفاق می افتد اگر یک تحقیق جدی تمام این فرضیه ها را تکذیب میکرد؟ اگر رشد اقتصادی و اتکاب خود مردم را خوشبخت نکند پس امتیاز کاپیتالیسم در چیست فرض کنید که توده های تحت سلطه یک امپراتوری بزرگ به طور کلی خوشبخت از شهروندان دولت های مستقل باشند مثلا اینکه الجزایری های تحت حاکمیت فرانسه خوشبخت از الجزایری های تحت حاکمیت وطنی بوده باشند چنین تحقیقی در مورد فرایند استعمار زدایی و ارزش حق حاکمیت ملی چه خواهد گفت اینها همه احتمالاتی فرضی هستند زیرا تاریخنگاران تاکنون از طرح چنین سوالاتی تفره رفتند چه برسد به پاسخ دادن به آنها آنها تاریخ را تقریبا از تمام جهات بررسی کرده سیاست جامعه اقتصاد، جنسیت، ناخوشی، تمایلات جنسی، خوراک، لباس. اما هرگز مکس نکردند تا بپرسند که این عوامل بر خوشبختی بشر چه تأثیری دارد. اگرچه معدودی راجع به تاریخ بلند مدت خوشبختی مطالعاتی انجام دادند، اما تقریبا تمام محققین و مردم عادی درکی مبهم از آن دارند. از جهتی کلی قابلیت‌های بشری در طی تاریخ افسایش یافته از آنجا که انسان‌ها از قابلیت‌های خود برای کم کردن ناکامی و تحقق آرزوهایشان استفاده می‌کنند پس انسان‌های نوین قاعدتاً باید از پیشینیان قرون وسطایی خود و اینها از پیشینیان شکارگر گردآورنده خود خوشبخت تر بوده باشند اما این نگرش پیشرفت نگرانه قانع کننده نیست چنانچه دیدیم تواناییها رفتار و های جدید لزوماً به زندگی بهتری نمی‌انجامد. وقتی انسانها در انقلاب کشاورزی زراعت را آموختند نیروی جمعیشان برای شکل دادن به محیط زیست افزایش یافت اما سرنوشت بسیاری از ها بدتر شد روستاییان ناچار بودند تا سخت‌تر از خوراکجویان کار کنند و تنوع و کیفیت خوراکشان هم پایین‌تر آمد و بیشتر در مقابل بیماری‌ها و استثمار آسیب پذیر شدند. به همان ترتیب، گسترش امپراتوری‌های اروپایی توان جمعی بشر را با اشاعه افکار، فناوری‌ها و محصولات جدید و گشودن راه‌های جدید به روی تجارت افزایش داد. اما این همه به سختی میتواند خبر خوبی برای میلیونها آفریقایی، بومیان آمریکایی و استرالیایی باشد. با توجه به گرایش بشر به سواستفاده از قدرت، صادلوانه است اگر باور کنیم که هرچه توانایی انسان بیشتر باشد خوشببختتر خواهد بود. بعضی از این نظریه موضعی کاملا متضاد دارند. آنها از یک رابطه معکوس بین قابلیت‌های بشری و خوشبختی دفاع می‌کنند و معتقدند که قدرت فاسد کننده است و هر چه انسان قدرت بیشتری به دست آورد، یک دنیای سرد مکانیکی و نامناسب با نیازهای واقعی ما به وجود آورد. تکامل مغز و پیکر ما را متناسب با نوع زندگی شکارگرخوار شکل داد. گذار به کشاورزی و سپس به صنعت ما را محکوم به نوعی از زندگی غیر طبیعی کرد که نمیتواند به ما امکان بروز کامل تمایلات و قرائز درونی مان را بدهد و از این رو نمیتواند خواست های ما را متحقق کند. هیچ چیز در یک زندگی مرفه طبقه متوسط شهری نمیتواند با هیجان و لذت نابی برابری کند که یک گروه خوراکجو پس از شکار موفق یک مامود تجربه می کرد. هر اختراع جدیدی فقط فاصله میان ما و بهشت به اولیه را بیشتر می کند. اما چنین اصرار رومانتیکی در دیدن یک سایه تیره در پشت هر اختراعی به همان اندازه جزمی خواهد بود که به اجتناب ناپذیری هر پیشرفتی باور داشته باشیم. شاید ما تماس خود را با شکارگر خوراکجوی درون خود از دست داده ایم اما این فقط منفی نیست. برای مثال پزشکان نوین در طی دو قرن اخیر مرگ میر نوزاد را از 33 درصد به کمتر از 5 درصد رساندند. آیا میتوان در اینکه این دستاورد هم باعث شادی کودکانی شد که بدون وجود آن میمردند و هم موجب خوشنودی خانواده ها و دوستانشان؟ دیدگاهی متفاوت تر وجود دارد که موضع میانه را اتخاذ میکند. تا مقطع انقلاب علمی رابطه روشنی بین قدرت و خوشبختی وجود نداشت. دهقانان قرون وستا شاید شرایط نکبت بارتری از پیشینیان شکارگر خوراکجوی خود داشتند اما در طی این چند قرن اخیر انسان آموخت تا از قابلیت‌های خود به گونه‌ای خردبندان تری بهره گیرد یک نمونه دستاوردهای پزشکی است دستاوردهای بی سابقه دیگر کاهش شدید خشونت از بین رفتن جنگ‌های میان کشورها و ریشه‌کنی تقریبی قحطی در ابعاد گسترده است. اما این هم یک نگری است. اولا این نظریه ارزیابی خوشبینانه را بر پایه یک دوره بسیار کوتاه به عمل آورده. از سال 1850 به بعد بود که اکثر انسان ها توانستند از دستاوردهای جدید پزشکی بهره‌مند شوند و کاهش شدید مرگ و میر نوزاد است مربوط به قرن بیستم. قحطی‌های گسترده کماکان تا اواسط قرن گروه های وسیعی از انسان‌ها را در کام خود می‌گرفت. تایی دوران جهش بزرگ به جلو در چین کمونیست، بین سالهای 1958 تا 1961 تعدادی بین 10 تا 50 میلیون نفر از گرستنگی مردند. جنگ های بینومللی تنها پس از 1945 فروکش کردند که تا حدود زیادی مدیون تهدید نابودی هسته ای بود، پس علیرغم اینکه این دهه های اخیر سالهای بینظیر طلایی بودند هنوز برای قضاوت کردن زود است بدانیم که آیا اینها تغییراتی پایدار در تاریخ کنونی هستند یا مقطعی وقتی به قضاوت مدرنیته میپردازیم بسیار وسوسه می شویم که از زاویه نگرش طبقه متوسط غربی قرن کم حرکت کنیم ما نباید نظر کارگر ولزی معدن زغال سنگ قرن نوزدهم چینی معتاد به تریاک یا بومیهای های تاسمانی را فراموش کنیم. سانیان، شاید اصر طلایی نیمه دوم قرن اخیر بذر فاجعه آینده را کاشته باشد. ما تگه دههای اخیر تعادل زیست محیطی را به اشکال فراوان جدیدی برهم زده ایم که احتمالاً عواقب ویرانگری خواهد داشت. شواهد زیادی نشان می دهند که ما با یک مصرف بیرویه در حال ویران کردن پایه های کامیابی بشر هستیم. و سرانجام ما فقط در صورتی می توانیم به خاطر دستاوردهای بی سابقه انسان خردمند نوین به خود ببالیم که سرنوشت تمام حیوانات را کاملا نادیده بگیریم. بسیاری از رفاه مادی که از ما در مقابل بیماری ها و قحطی محافظت می کند به بهای های شکنجه و قربانی شدن میمون ها در آزمایشگاه ها گاف های شیرده و مرغها روی خط تولید به دست آمده در تهیه دو قرن اخیر دهها میلیارد از آنها قربانی استثمار صنعتی شدهاند که قساوت آن در تاریخ بی سابقه بوده اگر تنها یک دهام از آنچه را که فعالین حقوق حیوانات مطرح می کنند بپذیریم، کشاورزی نوین صنعتی باید بزرگترین جنایت تاریخ باشد. وقتی سعادت جهانی را ارزیابی می کنیم، اشتباه خواهد بود اگر تنها خوشبختی طبقات بالایی اروپاییان یا مردان را به حساب آوریم. شاید همچنین اشتباه باشد که تنها خوشبختی بشر را مد نظر داشته باشیم. محاسبه خوشبختی ما تا اینجا خوشبختی را طوری بررسی کرده ایم که گویی عمدتا از عوامل مادی مثل سلامتی، خوراک و ثروت حاصل می شود. اگر مردم ثروتمندتر و سالم تر باشند، بنابراین باید خوشبخت هم باشند. اما آیا این واقعاً تا به این حد است؟ فیلسوفان که شیشان و شاعران، تی هزاران سال در مورد ماهیت خوشبختی تفکر کرده اند و بسیاری چنین کرده اند که عوامل اجتماعی، اخلاقی و روانی به همان اندازه عوامل مادی بر خوشبختی ما تأثیر دارند. شاید مردم در جوامع نوین رفاه، علا رغم رفاه خود، در حد زیادی از از خودبیگانگی و پوچی رنج میبرند. و شاید نیاکان ما که رفاه کمتری داشتند رضایت بیشتری در جمعگرایی، دین و پیونده با طبیعت میافتند. روانشناسان و زیستشناسان در دهه‌های اخیر، مطالعه علمی این مسئله که چه چیزی واقعا انسان را خوشبخت می‌کند، در دستور کار خود قرار دادند. آیا عامل خوشبختی پول است؟ یا شاید خانواده، یا ژنتیک، یا تقواست؟ اولین گام این است که تعین کنیم که چه چیزی محاسبه شود. تلقی پذیرفته شده عمومی در تعریف خوشبختی بهزیستی و رضایت درونی است. بر اساس این نظریه خوشبختی چیزیست که من در مسیر زندگی روزمره در درون خود احساس می احساسی از رضایت آنی یا طولانی مدت. اگر این چیزی چیزیست که درونن احساس می شود، پس چطور می از بیرون اندازه گیری شود؟ احتمالاً با پرسیدن از افراد در مورد اینکه چه احساسی دارند. بنابراین روانشناسان یا زیستشناسانی که می خواهند بدانند که آیا مردم خوشبخت هستند، به آنها پرسشنامه های می دهند تا از روی جوابها به نتیجه آن پی ببرند. یک پرسشنامه معمولی رضایت درونی از مصاحبه شوندگان می تا در جواب به سؤالاتی نظیر من از آنچه که هستم رضایت دارم. من احساس می کنم که زندگی بسیار رضایت بخش است. من راجع به آینده خوشبینم و زندگی زیباست عددی را میان صفر تا ده انتخاب کنند. محقق سپس تمام این جواب های مصاحبه شونده را محاسبه می کند تا سطح رضایت درونی کلی او را محاسبه کند. از چنین پرسشنامه هایی به منظور مرتبط کردن خوشبختی با عوامل مختلف بیرونی استفاده می شود. می توان در یک بررسی هزار نفر را که 100 هزار دلار در سال درآمد دارند با هزار نفر دیگر که 500 هزار دلار درآمد دارند مقایسه کرد اگر این بررسی نشان دهد که میانگین رضایت درونی گروه اول هشت و همه درصد و گروه دوم 73 همه درصد است، آنگاه محققین منطقا باید نتیجهگیری گیری کنند که میان ثروت مالی و رضایت درونی ارتباط مثبتی وجود دارد. به زبان ساده پول خوشبختی می آورد. با روش مشابهی میتوان سطح خوشبختی کسانی که در دموکراسی یا دیکتاتوری زندگی میکنند و یا متعهل ها در مقایسه با مجردها، مطلقه ها در مقایسه با بیوه ها را محاسبه کرد. این خود زمینه را برای مورخین فراهم می آورد تا بتوانند به بررسی ثروت، آزادی سیاسی و آمار طلاق در گذشته بپردازند. اگر مردم تحت نظام دموکراسی خوشبخت ترند و افراد متعهل از متلقه ها رضایتمند ترند، بنابراین تاریخنگار نگار پایهی به دست آورده تا بر اساسش استدلال کند که روند دموکراسی در دهه اخیر به امر خوشبختی انسان کمک کرده در حالی که افزایش آمار طلاق نقشی معکوس داشته. این نحوه تفکر خالی از ایراد نیست، اما قبل از اشاره به نقاط ضعف آن جا دارد تا به یافته ها نظری بیندازیم. یک نتیجهگیری گیری جالبین است که پول در حقیقت خوشبختی می آورد، اما تا حدودی و بعد از آن مرحله به بعد نقش چندانی ندارد. برای آنهایی که در پایین ترین رده اقتصادی به سر می برند، پول بیشتر به معنی خوشبختی بیشتر است، اگر یک مادر تنها که درآمد سالانه او از کار نظافت دوازده هزار دلار است، ناگهان پانصد هزار دلار در وقتخت آزمایی برنده شود شاید یک جهش چشمگیر دراز مدت در رضایت درونی خود تجربه کند. او می تواند برای فرزندانش غذا و لباس تهیه کند بدون آنکه در قرض بیشتری فرو رود اما اگر یک مدیر رامل که درآمده سالانه او پنجاه هزار دلار است و در بخت آزمایی یک میلیون دلار برنده شود یا اینکه هیئت رئیسه حقوقش را ناگهان دو برابر کند رضایت ناگهانی او تنها چند هفته دوام خواهد داشت بر اساس شواهد تجربی، به طور یقین این جهش ناگهانی تفاوت زیادی را در احساس طولانی مدت او به وجود نخواهد آورد او یک خودروی شیکتر می‌خرد، یا به یک خانه مجلل نقل مکان می کند، و یا عادت می کند که به جای این نوشابه آن نوشابه بسیار خوشمزه را بنوشد. اما همه اینها به زودی به اموری روزمره و عادی بدل می شوند. یافته جالب دیگری این است که ناخوشی خوشبختی را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد. اما اگر ناخوشی رو به وخامت رود یا تداوم یابد و ناراحتی های جانکاهی را به دنبال داشته باشد، به عامل پریشانی دراز مدت او بدل خواهد شد. افرادی که دوچار بیماری های مزمن مثل دیابت می شوند، معمولا تا دوره ای افسرده بودند. اما اگر بیماری بدتر نشود، خود را با شرایط تطبیق می دهند و رضایتشان به اندازه افراد سالم بالا می رود. تصور کنید که لوسی و لوک یک دوقلوی طبقه متوسط هستند که میپذیرند تا در یک تحقیق رضایت درونی شرکت کنند. خودروی لوسی در مسیر بازگشت از آزمایشگاه روانشناسی با یک اتوبوس تصادف می‌کند و به شکستن تعدادی از استخوان‌های او میانجامد که او را به طور دائم فلج می‌کند. همزمان با اینکه گروه نجات در حال تلاش است تا لوسی را از درون خودروی مچاله شده بیرون آورد تلفن لوک زنگ میخورد و او از فرط خوشحالی فریاد میزند زیرا او در یک قرعه كشی بختآزمایی ده میلیون دلار برنده شده دو سال بعد لوسی به لنگیدن ادامه میدهد و لوک ثروتمندتر می‌شود. اما وقتی روانشناس میخواهد تحقیق خود را دنبال کند، هر دو احتمالا همان جوابهای را میدهند که دو سال پیش در آن روز شوم دادند. به نظر می رسد که خانواده و جامعه تأثیر بیشتری از پول و سلامتی در خوشبختی ما دارند. افرادی که دارای پیوندهای قوی خانوادگی هستند و در جوامعی با روابط نزدیک و حمایت جوانه زندگی می کنند، به طور چشمگیری خوشبختتر از افرادی هستند که روابط خانوادگی بختل دارند و هرگز جامعه را نیافتند تا خود را جزئی از آن بدانند. مطالعات مکرر نشان داده که رابطه بسیار نزدیکی بین ازدواج موفق و رضایت درونی بالا و ازدواج ناموفق و احساس ناکامی وجود دارد. این امر صرف نظر از موقعیت اقتصادی یا شرایط جسمانی صدق می کند. یک فرد توحیدست و معلول در کنار یک کمسر مهربان و خانوادهی فداکار و جامعه‌ای با محبت، چه بسا از یک میلیاردر منزوی حال بهتری داشته باشد به شرط اینکه فقرش خیلی جدی نباشد و بیماریش دردناک یا روبه بخامت نباشد. به این ترتیب این احتمال افزایش میابد که بهبودی های گسترده در شرایط مادی دو دوغرن اخیر زوال پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را جبران کرده باشد. اگر چنین باشد، یک فرد معمولی چه بسا خوشبخت تر از قرن هجدهم نباشد. حتی آزادی که ما آن را تا به این حد عرج می نهیم، می تواند بر علیه ما عمل کند. ما می همسر، دوست و همسایه خود را انتخاب کنیم، اما آنها هم این اختیار را دارند که ما را ترک کنند. با افزایش بی سابقه اختیارات فردی در انتخاب راه زندگی و فاداری به تعهدات باز هم دشوارتر می شود. بنابراین ما بیش از پیش در یک جهان تنهایی با پیوندهای سست خانوادگی و اجتماعی به سر می بریم. اما مهمترین یافته این است که خوشبختی به واقع وابسته به شرایط مادی ثروت سلامتی یا حتی پیوندهای اجتماعی نیست. بلکه منوط به ارتباط میان شرایط عینی و انتظارات ذهنی است. اگر شما به دنبال یک گاری باشید و آن را به دست آورید خوصند خواهید شد. اگر یک خودروی فراری دست اول بخواهید و به جای آن به یک فیات دست دوم برسید احساس محرومیت می به این دلیل است که برنده شدن در بخت‌آزمایی آزمایی طول زمان همان تأثیری را بر احساس خوشبختی و شادکامی میگذارد گذارد که یک حادثه رانندگی و معلولیت جسمی می داشته باشد. وقتی اوضاع بهتر می شود، توقعات هم بالا می رود و در نتیجه حتی پیشرفت عظیم مادی هم ممکن است کننده نباشد. وقتی شرایط بدتر می شوند، توقعات هم پایین تر می آیند و در نتیجه چه بسا حتی یک بیماری جدی نتواند از احساس شادکامی ما بکاهد. شاید بگویید که برای پی بردن به این مسائل نیازی به وجود گروهی روانشناس و پرسشنابه نیست. پیامبران، شوعرا و فیلسوفان از هزاران سال پیش پی بردند که خوشنود بودن با آنچه داریم، بسیار مهمتر از رسیدن به بسیاری از خواسته هاست. با این حال، جالب است که تحقیقات نوین با اتکاب اعداد و ارقام و نمودارهای فراوان به همان نتایجی میرسند که نیاکان ما رسیده بودند. اهمیت اساسی توقعات انسانها پیامدهای عمیق خود را بر درک تاریخی از خوشبختی دارد. اگر خوشبختی فقط وابسته به عوامل مادی، مثل ثروت، سلامتی و پیوندهای اجتماعی باشد، مطالعه تاریخ آن نسبتاً آسان میتواند باشد. اما آنجا که به انتظارات ذهنی برمیگردد، کار مورخین بسیار دشوارتر می‌شود. ما در عصر نوین انباری از آرامش بخش ها و مسکن ها را در اختیار داریم اما توقعات ما از آسایش و لذت و ناشکیبایی ما در برابر ناراحتی ها و دشواری ها تا به حدی افزایش یافته که باعث شده تا شاید از پیشینیان خود بیشتر در مقابل درد و ناراحتی حساس باشیم. پذیرش این شیوه فکری آسان نیست. مشکل در استدلال نادرستی است که در عمق روان ما رخنه کرده. وقتی سعی می‌کنیم حدس بزنیم یا تصور کنیم که چطور دیگران خوشبختند و چطور پیشینیان ما در گذشته خوشبخت بودند به ناگزیر خود را به جای آنها می‌گذاریم. اما این عملی نیست زیرا شرایط مادی آنها را با انتظارات کنونی خود می سنجیم. در جوامع رفاهی نوین مرسوم است که هر روزه دوش بگیریم و لباس خود را عوض کنیم. دهقانان قرون وستا تا ماها نه خود را می و نه لباسشان را عوض می کردند. حتی فکر زندگی با بدنی کثیف و بدبو احساس کراحت در ما به وجود می آورد. اما دهقان قرون وسطا هیچ مشکلی با این مسئله نداشت. او به بوی پیراهنی که به داشت عادت کرده بود. موضوعی نیست که میخواست لباسش را عوض کند زیرا نمیتوانست. آنها هرچه می‌خواستند داشتند و حداقل تا جایی که به لباس مربوط بود راضی هم بودند. وقتی فکرش را میکنیم میبینیم که آنقدرها هم عجیب نیست. خویشاوندان شامپانزه ما به ندرت خود را میشویند و هیچگاه لباس عوض نمی کنند. از این هم که و گربه های خانگی ما دوش نمی‌گیرند و لباس عوض نمی کنند، مشمعز نمی بچه ها هم در جوامع مرفه اغلب دوست ندارند حمام بروند و قانع کردن آنها به این عرف ظاهرن دلپذیر نیازمند سالها آموزش و انزبات خانوادگی است. پس این همه به انتظارات ما بستگی دارد. اگر خوشبختی توسط توقعات تعیین می شود، پس در رکن جامعه یعنی رسانه های گروهی و صنعت تبلیغات ممکن است ناآگاهانه در حال خالی کردن زخایر خوشنودی دنیا باشند. اگر شما یک جوان هجده ساله بودید و پنج هزار سال پیش در روستایی زندگی می کردید، شاید خود را جذاب می دانستید زیرا فقط پنجاه مرد دیگر در روستای شما زندگی می کردند و اغلب آنها یا مسن بودند یا جای زخمی بر چهره داشتند و چروکیده بودند و یا هنوز کوچک بودند. اما اگر یک نوجوان امروزی باشید، به احتمال زیاد احساس کم بود خواهید کرد. حتی اگر پسرهای دیگر در مدرسه بدقیافه باشند، شما خود را فقط با آنها مقایسه نمی کنید، بلکه با هنرپیشه های فیلم ها، ورزشکاران و چهره های مشهوری می سنجید که روزانه در تلویزیون، فیسبوک و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی می بینید. پس شاید نارضایتی جهان سومی نه تنها بر اثر فقر، ناخوشی، فساد و سرکوب سیاسی بلکه همچنین حاصل قرار گرفتن در برابر استانداردهای جهان اولی باشد. امروز احتمال بسیار کمتری وجود دارد تا یک مصری معمولی از قهدی تا اون یا خشونت حکومتی حسنی مبارک بمیرد تا مصری های تحت حکومت فرعون رامسس دوم یا کلوپاترا. شرایط مادی رفاهی مصریها هرگز تا به این حد رضایت بخش نبوده. می توان تصور کرد که آنها در سال 2011 در خیابانها به پایکوبی بپردازند و خدا را به خاطر بخت خوب خود شکر کنند. اما در عوض از خشم قیام کردن تا مبارک را سرنگون کنند. آنها خود را نبا نیاکان خود تحت حاکمیت فرائنه، بلکه با همدورهی خود در آمریکای تحت حاکمیت اوباما مقایسه می کردند. اگر اینطور باشد، زندگی جاودان هم ممکن است به نارضایتی منتهی شود. فرض کنید که علم راه علاج تمام بیماری ها را پیدا کند و درمانهای مؤثری بر علیه کهولت بیابد که انسانها را به طور دائم شاداب و جوان نگه دارد. نتیجه همه اینها به احتمال بسیار قوی خشم و استراب همگیر و بی سابقه خواهد بود. آنها که استطاعت معالجات جدید معجزه‌آسای پزشکی را ندارند، یعنی اکثریت وسیع مردم آکنده از خشم میشوند. فقرا از این فکر که آنان باید بمیرند و ثروتمندان برای همیشه جوان و زیبا باقی بمانند، خوشحال نخواهند شد. اما حتی اقلیت معدودی هم که استطاعت پرداخت هزینه های معالجات جدید را دارند خوشحال نخواهند شد و دلایل زیادی برای دل دلواپسی خواهند داشت. حتی اگر معالجات جدید بتواند زندگی و جوانی را افزایش دهد، جسد بیجان را دوباره زنده نخواهد کرد. چقدر وحشتناک است اگر فکر کنیم خود و عزیزانمان میتوانیم برای همیشه زنده بمانیم اما به شرط اینکه زیر کامیون نرویم یا توسط بمب یک تروریست قطعه قطعه نشویم. آدمهای بلقوه نامیرا احتمالا تمایلی نخواهند داشت تا کمترین خطر را بپذیرند و متحمل رنج از دست دادن همسر، فرزند یا دوستان نزدیکشان شوند. خوشبختی شیمیایی محققین علوم اجتماعی پرسشنامه های رضایت درونی را بین افراد توضیح می کنند و نتیجه آن را در ارتباط با عوامل اجتماعی، اقتصادی، نظیر ثروت و آزادی سیاسی بررسی می کنند. زیستشناسان از همان پرسشنامه ها استفاده می کنند اما پاسخها را در رابطه با عوامل زیستشناسی و ژنتیکی می سنجند. یافته های آنها حیرت انگیز است. زیست شاس نقیده دارند که دنیای ذهنی و عاطفی ما تحت حاکمیت کارکردهای شیمیایی است که تی میلیونها سال تکامل یافته. رضایت درونی ما همانند دیگر حالتهای ذهنی نه توسط عوامل بیرونی مثل درآمد، روابط اجتماعی یا حقوق سیاسی، بلکه توسط نظام پیچیده ای از یاخته های عصبی، نورون ها، سیناپس ها و مواد زیست شیمیایی گوناگون مثل سروتونین، دوپامین و اکسیتوسین تعیین می شوند. کسی هرگز با برنده شدن در بخت‌آزمایی، خرید خانه، ترفیع گرفتن یا یافتن عشق حقیقی خوشبخت نشده مردم تنها و تنها با یک چیز خوشبخت میشوند و آن احساسات دلپذیر در جسمشان است فردی که در بخت آزمایی برنده شده یا عاشق شده و از خوشحالی سر از پا نمیشناسد در واقع به پول یا عشق واکنش نشان نداده او به هرمونهای مختلفی که در جریان خون او شناورند و به هجوم علائم الکتریکی میان بخشهای مختلف مغزش اکثر عمل نشان میدهد متاسفانه علی رغم تمام امیدهایی که به ساختن بهشت بر روی زمین وجود دارد به نظر می‌رسد که نظام زیست شیمیایی درونی ما طوری برنامه‌ریزی شده که خوشنودی را در سطح حسابت نگه می‌دارد به طور مشخص برای خوشبختی انتخاب طبیعی وجود ندارد با انتقال ژن‌های یک زوج مسترب و پریشان به نسل بعد، تبار ژنتیکی یک گوشه‌نشین خوشبخت منقرض شود نقشی که خوشبختی و بدبختی در تکامل بازی می کند در حدی است که میل به بقا و تولید مثل را تقویت یا تضعیف کند. پسرايت تعجب آور نباشد که تکامل ما را به گونه‌ای شکل داده که نه خیلی احساس ناکامی کنیم و نه خیلی احساس خوشبختی. تکامل ما را قادر می سازد تا از یک حجوم آنی احساسات دلپذیر به وجد داییم اما این تا ابد دوام ندارد و دیر یا زود فروکش می کند و جای خود را به احساسات ناخوشایند می دهد. برای مثال تکامل به عنوان پاداش در مزکرها احساس لذت جنسی را به وجود آورد تا جن خود را تی رابطه جنسی با جنس معنس بارور گسترش دهند. اگر رابطه جنسی با لذت جنسی همراه نمی بود، معدودی زحمت این کار را به خود میدادند. اما تکامل همزمان ترتیبی داد تا این لذت جنسی به سرعت فروکش کند. اگر ارزای جنسی قطع نشود، مذکرهای غرق در لذت جنسی از گرسنگی و فقدان اشتها به غذا می میرند و رنج جستجوی معنسهای بارور دیگر را بر خود هموار نمی‌کنند. گروهی از محققین زیستشیمی انسانی را با سیستم تهویه مقایسه کردند که دما را علی رغم سردی و گرمی هوای خارجی یکسان نگه میدارد. نوسانات هوا شاید به طور مقطعی دما را تغییر دهد اما سیستم تهویه همواره هوا را به یک درجه معین باز می گرداند. بعضی از سیستم‌های تهویه هوا بر روی 25 درجه و بعضی دیگر روی 20 درجه سلسیوس تنظیم شده‌اند سیستم‌های شرایط رضایت انسانی هم بسته به افراد مختلف متغیر است در یک مقیاس میان یک تا ده، بعضی از افراد با یک سیستم بیوشیمی شاداب متولد می شوند و خرق آنها در بین شش و ده در نوسان است. اما بعد از مدتی روی هشت باقی میمانند. چنین افرادی حتی اگر در یک شهر بزرگ منزوی کننده زندگی کنند و تمام پولهایشان را با سقوط نرخ سهام از دست بدهند و به بیماری دیابت مبتلا شوند، باز کاملا خوشبخت خواهند بود. افراد دیگری هم هستند که در نفرین یک زیست شیمی افسرده گرفتارند که میان سه و هفت در نوسان است و بعد از مدتی روی پنج باقی میماند. چنین فرد ناکامی حتی اگر از حمایت گروهی جامعه هم برخوردار باشد یا میلیون دلار در بختازمایی برنده شود و مثل یک ورزشکار المپیک سالم باشد باز هم افسرده خواهد بود. در حقیقت اگر این دوست محزون ما در صبح 50 میلیون دلار برنده شود، ظهر معالجه ایدز و سرطان را کشف کند، عصر بین اسرائیل و ها صلح برقرار کند و در غروب به فرزندش که مدت‌های طولانی گم کرده بود برسد، باز هم نمیتواند خرسندی را در ورای هفت تجربه کند. به زبان ساده، مغز این فرد برای نشاط ساخته نشده، حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. برای لحظه ای به خویشاوندان و دوستانتان فکر کنید. شما افرادی را می شناسید که صرف نظر از آنچه که برایشان اتفاق میافتد، عموماً شادند و کسانی هم وجود دارند که علورغم تمام نعمتهایی که از این دنیا به آنها رسیده باز هم ناریند. ما بیشتر مایلیم ما فکر کنیم که اگر کار خود را عوض کنیم ازدواج کنیم رمانی را که در حال نوشتنش هستیم به اتمام برسانیم، خودروی جدیدی بخریم یا بدهی خود را بپردازیم خوشبختتر خواهیم شد. اما وقتی به اینها دستیافتیم، یافتیم، باز همان احساسی را خواهیم داشت که قبل از آن داشتیم. خریدن یک خودرو یا تمام کردن رومانی که در دست داریم تغییری در زیست شیمی ما به وجود نمی آورد. اینها می توانند برای لحظه ای احساسات ما را تغییر دهند اما به زودی این احساسات به جای اول خود باز می گردند. حال چطور چنین نظریاتی با یافته‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی هماهنگ می‌شوند اینکه مثلا متعهلین به طور عموم از مجردین خوشبخت‌ترند؟ اولا این یافته‌ها با هم مرتبطند، اما رابطه ی علت و معلول می‌تواند بر خلاف آن چیزی باشد که محققین به آن رسیدند. این حقیقت دارد که افراد متعهل از مجردین یا متعلقه ها خوشنودترند. اما این به این معنی نیست که ازدواج باعث خوشبختی است. می توانست این طور باشد که خوشنودی باعث ازدواج می شود یا درستتر بگوییم اینکه که دوپامین و اکسیتوسین باعث ازدواج و بقای آن می شود. افرادی که با یک زیست شیمی بشاش به دنیا آمدهاند عموماً خوشبخت و راضی هستند. این افراد همسران جالبتری هستند و در نتیجه امکان بیشتری برای ازدواج دارند و احتمال جدایی در میان آنها کمتر است زیرا زندگی با چنین افرادی در مقایسه با زندگی با افراد افسرده و ناراضی آسان تر است در نتیجه حقیقت دارد که افراد متأهل عموما از مجردها ترند اما یک زن مجرد که به دلیل وضعیت زیست شیمی خود افسرده است لزوماً به دلیل زندگی با مردی خوشبختتر نخواهد شد. به علاوه اغلب زیستشناسان متاسب نیستند. آنها معتقدند که خوشبختی عمدتا توسط زیست شیمی تعیین می شود، اما می پزند که عوامل روانشناسی و جامعه شناختی جایگاه خود را دارند. سیستم تهویه ذهنی ما در چارچوب مرزهای تعیین شده تا حدودی آزادی عمل دارد بالاتر یا تر رفتن از مرزهای عاطفی تقریبا غیرممکن است اما ازدواج و طلاق می‌تواند در محدوده های میان این دو تأثیر داشته باشد فردی که با میانگین خوشنودی پنج متولد می‌شود، هرگز نمیتواند مسرورانه برخصد ولی یک ازدواج خوب شاید او را قادر کند تا گاه گاهی به مرز هفت از خرسندی برسد و از روحیه افسرده 3 درجه فاصله بگیرد اگر رویکرد زیست شناختی بر خوشبختی را بپذیریم تاریخ اهمیت کمتری مییابد زیرا اغلب حوادث تاریخی تأثیری بر زیست شیمی ما نداشته تاریخ می تواند انگیزه های بیرونی را که موجب ترشوه سروتونین شود تغییر دهد اما نمی میزان سیروتونین و حاصله را تغییر دهد و فرد را خوشبختتر کند. یک دهقان فرانسوی قرون وستا را با یک بانکدار پاریسی دوران نوین مقایسه کنید. دهقان در یک کلبه گلی با چشمندازی به خوکدانی زندگی می کرد در حالی که بانکدار در یک خانه مجلل و مشرف به شانزلیزه زندگی می کند که مجهز به جدیدترین ابزارهای تکنولوژیک است. حس درونی به ما میگوید که بانکدار از دهقان بسیار خوشبخت تر است اما کلبه گلی و خانه مجلل مشرف به شانزلیزه نمیتواند به واقع خلق و خوی ما را تعیین کند اما سروتونین می تواند وقتی دهقان قرون وستا ساخت کلبه گلی خود را تمام میکرد یاخته های عصبی مغزش سروتونین ترشح می کردند و قلظت آن را تا فلان حد بالا می بردند یاخته های عصبی مغزی بانکدار هم در سال 2014 زمانی که آخرین قصد خانه مجلل خود را پرداخت به همان اندازه سروتونین ترشح می میکرد برای مغز فرقی نمی کند که زندگی در خانه مجلل راحتتر از کلب ایگلی است تنها چیزی که برای مغز مهم است این است که اکنون سروتونین در فلان ساعت قرار دارد در نتیجه بانکدار به این خاطر ذره‌ای هم از پدر پدر پدر بزرگ دهقان فقیر قرون وسطایش خوشبختتر نیست. این امر نه صرفاً در مورد زندگی های خصوصی بلکه همچنین در مورد حوادث بزرگ عمومی هم مستاق دارد. یک نمونه انقلاب فرانسه است. انقلابیان مشغول بودند. آنها شاه را ادام کردند، به دهقانان زمین دادند، حقوق بشر را اعلام کردند، امتیازات اشراف را ملغا کردند و با تمام اروپا جنگ برپا کردند. اما این همه زیست شیمی فرانسوی را تغییر نداد. در نتیجه تمام دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و اقتصادی ناشی از انقلاب تأثیرات ناچیزی بر خوشنودی مردم فرانسه گذاشت. آنها که در بختازمایی ژنتیک از یک زیست شیمی بشاش برخوردار شدند هم قبل و هم بعد از انقلاب خوشنود بودند. آنهایی که دارای یک زیست شیمی اندوهگین بودند با همان تلخی شکوه کردند که در گذشته وضعیت بهتر بوده. در این صورت امتیاز انقلاب فرانسه چه بود؟ اگر مردم خوشبختتر نشدند پس آن همه آشفتگی، وحشت، خون و جنگ برای چه بود؟ اگر انتخاب با زیست شناسان بود، هرگز به زندان باستیل یورش نمی بردند. مردم فکر می کنند که این انقلاب سیاسی یا آن اصلاح اجتماعی آنها را خوشبخت می اما زیست شیمیشان آنها را باز هم فریب می دهد. تنها یک تحول تاریخی است که از اهمیت واقعی برخوردار است، امروز وقتی به این نتیجه می رسیم که کلید خوشبختی ما در دستان سیستم زیست شیمی ماست دیگر نباید وقت خود را روی سیاست و ایدئولوژی و اصلاحات اجتماعی و براندازی حکومت تلف کنیم و به جای آن تمرکز خود را فقط روی چیزهایی بگذاریم که ما را به واقع خشنود می کند مثل تحریف و دستکاری در زیست شیمی خود اگر میلیاردها صرف تحقیق برای درک شیمی مغز خود کنیم و به کشف درمان مناسب بپردازیم می توانیم انسان را بسیار خوشبختتر از گذشته کنیم بدون آنکه نیازی به انقلاب داشته باشیم برای مثال داروی ضد افسردگی پروزاک رژیم ها را عوض نمی کند اما با بالا بردن سطح ترشوه سروتونین مردم را از افسردگی می رهاند هیچ چیزی بهتر از شعار معروف عصر جدید استدلالات زیستشناختی را نشان نمیدهد. خوشبختی از درون میآید. پول، جایگاه اجتماعی، جراحی، خانه زیبا، قدرت و نفوذ اجتماعی هیچ کدام ما را به خوشبختی نمیرساند. خوشبختی پایدار تنها از سروتونین، دوپامین و اکسی‌توسین میآید. در رمان بچگونه یک جهان بی پروا نوشته آدلوس هاکسلی منتشر شده در اوج بحران بزرگ اقتصادی سال 1932 خوشبختی والاترین ارزش است و داروی روانگردانی جایگزین پلیس و انتخابات آزاد می شود که بنیان سیاست است همه هر روز یک مقدار از داروی ترکیبی سوما مصرف می کنند که مردم را خوشحال می کند بدون آنکه به باروری و کارایشان صدمه بزند دولت جهانی که بر همه کره زمین حکومت می کند، هرگز با جنگها، انقلابها، ائتلافها و تظاهرات تهدید نمی شود، زیرا همه مردم کاملا از وضعیت کنونی خود راضیند. هرچه که باشد. افق هاکسلی از رمان 1984 اثر جورج اورول به مراتب نگران کننده تر است. دنیای هاکسلی برای اکثر خاننده هایش هولناک می نماید. اما کسی نمیتواند چرای آن را توصیف کند. همه همواره خوشبختند. این چه ایرادی دارد؟ معنای زندگی دنیای نگران کننده هاکسلی بر اساس این فرضیه ی استوار است که خوشبختی با لذت همسان است. خوشبخت بودن معادل است با تجربه لذت جسمی، نه بیشتر و نه کمتر. از آنجا که زیستشیمی ما، میزان و دوام این احساسات را محدود می کند، تنها راه برای اینکه انسانها درجه بالایی از خوشبختی را در زمانی نسبتاً طولانی تجربه کنند، این است که در سیستم زیستشیمی خود دستکاری کنند. اما این توصیف از خوشبختی توسط بعضی از محققین زیر سؤال رفته، دانیل کانمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد در تحقیق معروفش از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری تهیه کنند و تعیین کنند که تا چه حد از مرحله به مرحله دیگر ساعت خود لذت میبرند یا آزرده می شوند. او پیبرد که نگرش اغلب مردم نسبت به زندگیشان آمیز است. نمونه پرورش کودک را مثال می‌آوریم. کان من کشف کرد که وقتی لحظات شادی و کار شاق پرورش کودک را ارزیابی می کنیم در میابیم که پرورش کودک امری ناخوشایند است. این کارها شامل تعویض پوشک، شست و شو، دست و پنجه نرم کردن با کچخلقی های کودک می شود که هیچ از انجامش لذت نمی برد. اما اغلب والدین ادعا می کنند که فرزندانشان منشعه اصلی خوشبختیشان هستند. آیا این به این معناست است که مردم به درستی نمیدانند دانند که چه چیزی برایشان خوب است؟ این یک زاویه است. زاویه دیگری این است که این یافته ها نشان می دهند که خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند نیست بلکه ناشی از ارزیابی زندگی در کلیت آن به عنوان چیزی با معنا و با ارزش است. در خوشبختی یک رکن مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد. ارزش‌های ما هستند که تعیین می‌کنند که آیا خود را بردگان تیرهبخت یک کودک دیکتاتور می‌دانیم یا پرورش دهندگان با عاطفه یک زندگی جدید. همانطور که نیچه عنوان کرد، اگر بتوان چرایی برای زندگی پیدا کرد، می‌توان برای تمام چگونه‌ها پاسخ داشت. یک زندگی با حتی در بطن ها می می‌تواند عمیقاً رضایت بخش باشد. اما زندگی بیمعنا، صرف نظر از میزان رفاه موجود، مصیبتی وحشتناک است. اگرچه اگر انسان‌ها در تمامی فرهنگ و در زمان گوناگون دردها و شادی های یکسانی داشتهاند اما معنایی که به تجربیاتشان داده اند احتمالاً بسیار متفاوت بوده. در این صورت، تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته تر از آن بوده باشد که زیستشناسان تصور می کنند. این استنتاجی است که لزوما به نفع مدرنیته نخواهد بود. یک ارزیابی از هر دقیقه زندگی در قرون وسطا گواهی قطعی برای زندگی سخت آن زمان است. اما با وجود اینکه به وعده های زندگی اخروی باور داشتند، زندگی خود را پرمعناتر و ارزشمندتر از انسان نوین سکولار می‌دانستند که در طولانی مدت به چیزی جز پوچی و فراموشی معنا باور ندارد. در پاسخ به سوال آیا در کل از زندگی خود راضی هستی مردم قرون وستا نمره بسیار بالایی در پرسشنامه رضایت درونی می گرفتند بنابر آیا پیشینیان قرون وسطایی ما به این دلیل خوشبخت بودند که معنای زندگی را در توهمات مشترک درباره آخرت می دیدند؟ بله تا زمانی که تخیلات و توهمات کسی فرو نریزد، این امر صادق است. تا آنجا که می توانیم بگوییم، از یک زاویه علمی محض مطلقا هیچ معنایی در زندگی انسانی نیست. انسان حاصل یک روند تکاملی کور بوده که بدون هدف و منظوری به پیش می رود، رفتار ما بخشی از یک تره ایزدی کیهانی نیست و اگر سیاره زمین فردا صبح منحدم شود، کهکشان شاید مثل گذشته به حیاتش ادامه دهد. تا آنجا که می بگوییم هیچ کس دلتنگ ذهنیت بشر نابود شده نخواهد شد. بنابراین هر معنایی که انسانها به زندگیشان نسبت میدهند دهند تنها یک توهم است، آن معنای جهان آخرت که مردم قرون وسطا در زندگی خود یافته بودند مهمتر از توهمات نوین انسانگرایانه، ناسیونالیستی و کاپیتالیستی نبودند که انسان امروز با آنها متوصل شده. دانشمندی که ادعا می‌کند که زندگیش با معناست، زیرا گنجینه دانش بشری را فزون می‌سازد، سربازی که ادعا می‌کند زندگی با معنایی دارد، زیرا برای دفاع از خاک خود میجنگد. و کارآفرینی که با تأسیس یک شرکت جدید به زندگی خود معنا میدهد از نیاکان خود در قرون وسطا کمتر در توهم نیست که معنای زندگی را در قرائت کتب مقدس، شرکت در جنگ‌های صلیبی و ساختن کلیساهای جامع می آفتند. پس شاید خوشبختی هماهنگ کردن توهمات شخصی با توهمات مشترک حاکم است. تا زمانی که روایت من در راستای روایات مردم اطرافم باشد، میتوانم خود را متقاعد کنم که زندگیم با معناست و خوشبختی را در این باور جستجو کنم. این یک نتیجه گیری کاملاً است. آیا واقعا خوشبختی در گروه خودپریبی است؟ خود را بشناس اگر خوشبختی بر پایه احساس لذت قرار دارد، پس برای خوشبخت‌تر بودن ناگزیریم سیستم زیست شیمی خود را بازمهندسی مهندسی کنیم. اگر خوشبختی در گرو این احساس است که زندگی با معناست، پس برای خوشبخت‌تر شدن باید خود را به طور مؤثری بفریبیم. آیا راه سومی هم وجود دارد؟ هر دو نظریه بالا در این فرضیه مشترکند که خوشبختی نوعی از احساس درونی است. خواه لذت و خواه معنا و برای اینکه بتوانیم در مورد خوشبختی مردم قضاوت کنیم فقط کافیست از خودشان بپرسیم که چه احساسی دارند این امر برای بسیاری از ما منطقی به نظر می آید زیرا دین قالب در عصر ما لیبرالیسم است لیبرالیسم به احساسات درونی افراد تقدس می دهد و این احساسات را سرچشمه اصلی اقتدار می پندارد. اینکه چه چیزی خوب یا بد است، چه چیزی زیبا یا زشته است، چطور باید باشد یا نباید باشد، همگی توسط احساسات تک تک خود ما تعیین می شود. سیاست لیبرالی بر اساس این تفکر قرار دارد که رایدهندگان از همه بهتر می دانند و نیازی به برادر بزرگ نیست تا به ما بگوید چه چیزی برای ما خوب است. اقتصاد لیبرالی بر پایه این نظر استوار است که همیشه حق با مشتری است. هنر لیبرال ادعا میکند که زیبایی از زاویه دیدگان بیننده تعیین می شود. دانشیان مدارس و دانشگاه های لیبرال آموخته تا خود فکر کنند. فیلم های حادثه ای، صحنه های تئاتر، سریال های تلویزیونی، رمان ها و تصنیف های موسیقی پاپ همواره به ما تلقین میکنند که با خود رو راست باش، از دلت پیروی کن. جان ژاک روسو نظر خود را به گونه ای کلاسیک بیان کرد. اگر احساس می‌گوید خوب است، پس خوب است و آنچه که احساس می‌گوید بد است، بد است. انسان‌هایی که از کودکی با این شعارها پرورش یافتند، مایلند باور کنند که خوشبختی احساسی درونی است و خود فرد به بهترین شکل می‌تواند دریابد که آیا خوشبخت است یا نگونبخت. اما این دیدگاه منحصر به لیبرالیسم است. اغلب ادیان و ها در طول تاریخ استدلال می‌کردند که برای نیکی و زیبایی و اینکه هر چیزی چگونه باید باشد، میارهای عینی وجود دارند. آنها به احساسات و اولویت‌های افراد معمولی بدگمان بودند. در آستانه معبد آپولو در دلفی، زائران با این سنگ نوشته مورد استقبال قرار می‌گرفتند. خودت را بشناس. مفهوم آن این بود که فرد معمولی از نفس حقیقی خود ناآگاه است و از این رو چه بسا از خوشبختی واقعی بیخبر است. احتمالاً نظر فروید هم همین بوده. نظر پیشوایان مسیحی هم همین بود. پل قدیس و آگستین قدیس به خوبی می دانستند که اگر از مردم در این بار سؤال شود بیشترشان ترجیح می دهند به جای عبادت پروردگار به معاشقه جنسی بپردازند. آیا این ثابت می کند که رابطه جنسی کلید خوشبختی است؟ پاسخ پل و آگستین به این سوال منفی است. این فقط ثابت می کند که بشر ماهیتاً گناهکار است و مردم به سادگی توسط شیطان وسوسه می شوند. از دیدگاه مسیحی اکثر مردم کماکان در وضعیتی مشابه به معتادین به هروئین هستند. تصور کنید که روانشناسی تحقیق درباره خوشبختی در میان معتادین انجام دهد. او با آنها مصاحبه می کند و درمیابد که هر کدام از آنها می گویند که تنها وقتی خوش نودند که نشعه هستند. آیا روانشناس ما باید گزارشی را منتشر کند و ادعا کند که هروئین کلید خوشبختی است؟ این نظریه که احساسات قابل اعتماد نیستند منحصر به مسیحیت نمی شود. حداقل وقتی که به ارزیابی احساسات می رسد حتی داروین و داکینز هم می توانستند نقطه مشترکی با پل و آگستین قدیس پیدا کنند بر اساس نظریه ژن خودخواه انتخاب طبیعی انسانها را همانند دیگر موجودات زنده طوری شکل می دهد که چیزی را انتخاب کنند که به باز تولید جن خودشان یاری می رساند، حتی اگر برای شخص خودشان خوب نباشد اکثر مزکرها به جای اینکه از یک زندگی سلحامیز و سعادتمند بهره شوند، زندگی خود را وقف زحمت و تشویش و رقابت می‌کنند، زیرا دی‌ان‌ایشان آنها را در جهت خودخواهانه خود به انحراف می‌کشاند. DNA ای همچون شیطان از لذت‌های آنی برای اقفال مردم استفاده می‌کند تا بتواند آنها را مقهور خود کند. در نتیجه اغلب ادیان و فلسفه‌ها در مورد خوشبختی مواضع بسیار متفاوتی با نظریه لیبرالیسم اتخاذ کردند. نظریه بودایی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جایگاهی که مسئله خوشبختی در بودیسم دارد، شاید در هیچ دین دیگری نداشته. بودیسها طی 2500 سال به طور منظم ماهیت و علل خوشبختی را بررسی کردند. به این دلیل است که علاقه روزافزونی در میان جابه‌ی علمی به فلسفه و تمرینات مراقبه آنها به وجود آمده بودیسم با نگرش اساسی رویکرد زیست شناختی به خوشبختی موافق است یعنی خوشبختی را نتیجه فرآیندهایی میداند که در درون بدن انسان رخ می‌دهد نه نتیجه رویدادهای جهان بیرونی با آنکه نقطه آغاز بودیسم با دیدگاه زیستشناسی مشترک است اما به نتایج بسیار متفاوتی می رسد. بر اساس نگرش بودیسم، اکثر مردم خوشبختی را با احساسات خوشایند و رنج را با احساسات ناخوشایند یکی می‌دانند. از این رو انسان‌ها اهمیت بسیار زیادی به احساسات خود می‌دهند و با ولع در جستجوی تجربه هرچه بیشتر لذت هستند و از احساس درد دوری می‌کنند. هر کاری که در سراسر زندگی خود انجام می‌دهیم، خواه خوردن پا باشد و خواه جابجا جا شدن روی صندلی یا شرکت در جنگ جهانی، فقط در تلاشیم تا به احساسات خوشایند دست یابیم. بر اساس دیدگاه بودیسم، مشکل این است که احساسات ما، همچون موج اوگیانوزها، چیزی به جز ارتعاشات زود گذر نیستند که هر لحظه تغییر می کنند. اگر من پنج دقیقه قبل احساس خوشایند و مسممی داشتم، حالا آن احساسات برطرف شده و ممکن است غمگین و افسرده باشم. پس اگر میخواهم احساس لذت بخشی را تجربه کنم باید مدام در باشم و همزمان از احساس ناخوشایند دوری کنم. حتی اگر موفق شوم ناچارم بلا فاصله از اول شروع کنم بدون آنکه در ازای زحماتی که متحمل می شوم پاداش پایداری دریافت کنم. چه چیز مهمی در بهرهمند شدن از چنین غنیمت‌های زودگذری نهفته؟ چرا باید برای چیزی تلاش کنیم که به همان سرعتی که به وجود آمده ناپدید می شود؟ بر اساس دیدگاه بودیسم، ریشه رنج نه احساس دردست و نه اندوه و نه حتی پوچی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بیپایان و بیهوده احساسات زودگذر است که حالتی از تنش دائمی، بیقراری و نارضایتی را در ما به وجود می آورد در نتیجه این جستجوی دائمی ذهن ما هرگز به رضایت دست نمییابد. حتی اگر لذت را تجربه کنیم باز ذهن ما راضی نیست. زیرا ترس از ناپدید شدن سریع این احساسات ما را رها نمی کند و اشتیاق دارد تا آن احساسات حفظ و تشدید شود. انسانها زمانی از رنج رهایی نمیابند که این یا آن لذت گذرا را تجربه کنند. بلکه زمانی اتفاق می افتد که به ماهیت ناپایدار تمام احساساتشان پی ببرند و دیگر اشتیاقی به آنها نداشته باشند. این هدف تمرینات مراقبه بودیستی است. در مراقبه از شما انتظار می رود تا از نزدیک ذهن و جسم خود را نظاره کنید. شاهد فراز و عفول دائمی تمام احساساتتان باشید و به پوچی حریسانه آنها پی ببرید. وقتی چنین عتشی متوقف می شود، ذهن به آرامش، وضوح و رضایت دست می آبد. تمام انواع احساسات درکارند تا دور بیپایان فراز و نشیب لذت، عصبانیت، ملالت و شهوت تداوم یابند. اما وقتی به جستجوی این یا آن احساسات پایان می دهیم، آنها را آنچنان که هستند خواهیم پذیرفت. ما در حال زندگی می کنیم، نه در خیال آنچه که اتفاق خواهد افتاد. آرامش به دست آمده چنان عمیق است که آنهایی که زندگی خود را در کسب دیوانوار احساسهای خوشایند سپری کرده اند، نمی تصورش را بکنند. این به مردی شباهت دارد که تگ دهه ها در ساحل ایستاده و موج خوب را در آغوش می کشد و سعی می کند از تلاشی آنها جلوگیری کند و همزمان موج بد را به عقب میراند و مانع آن می شود تا به او نزدیک شوند آن مرد هر روز در ساحل می ایستد و با این عمل بی سمر خود را به مرز دیوانگی می کشند. سرانجام روی ماسه های ساحل می نشیند و موجهایی را که به میل خود در رفت آمدند نظاره می کند. چه آرامشی. این نظریه چنان برای فرهنگ نوین لیبرال بیگانه است که وقتی جنبش های غربی اصر نوین با نگرش های بودایی روبرو شدند، آنها را در عبارات لیبرالیستی ترجمه و وارونه کردند. آین های عصر نوین دائما استدلال می کنند که خوشبختی به شرایط خارجی بستگی ندارد بلکه فقط به آنچه که در درون خود احساس می کنیم مربوط است. انسان ها باید از دستاورت های بیرونی مثل ثروت و مقام بپرهیزند و به جای آن با احساسات درون خود ارتباط برقرار کنند یا به طور خلاصه خوشبختی از درون آغاز می شود. این دقیقا آن چیزی نیست که زیستشناسان میگویند اما کما بیش عکس آن چیزی است که بودا گفته بود. بودا با زیستشناسی نوین و های عصر نوین موافق بود که خوشبختی مستقل از شرایط بیرونی است. اما بینش مهمتر و عمیق‌تر او این بود که خوشبختی واقعی نه فقط مستقل از شرایط بیرونی بلکه همچنین مستقل از احساسات درونی هم هست. در حقیقت هرچه اهمیت بیشتری به احساسات خود بدهیم، بیشتر به طمع آن گرفتار می شویم و بیشتر رنج می توصیه بودا این بود که نه تنها از جستجوی بهرجوی خارجی خودداری کنیم، بلکه همچنین از جستجوی احساسات درونی خود هم پرهیز کنیم. به طور خلاصه، پرسشنامه های رضایت درونی به رضایت ما از طریق احساسات درونی ما می برد و جستجوی خوشبختی را از طریق جستجوی حالات عاطفی خاصی محک می برخلاف این، برای بسیاری از فلسفه ها و ادیان سنتی مثل بودیسم، کلید خوشبختی آگاهی از حقیقت خود است. پی بردن به اینکه به واقع چه کسی و چه چیزی هستیم. اغلب مردم به خطا هویت خود را از طریق احساسات، افکار، علایق و نفرت‌های خود تعیین می‌کنند. وقتی عصبانی هستند فکر می‌کنند من عصبانی‌ام، این خشم من است. در نتیجه آنها زندگی خود را صرف اجتناب از بعضی احساسات و جستجوی بعضی دیگر می‌کنند. آنها هرگز درک کنند که احساساتشان نیستند و اینکه جستجوی بیپایان به دنبال احساس خاص آنها را فقط در دام ناکامی فرو میبرد. اگر اینطور است، پس تمامیت درک ما از تاریخ خوشبختی ممکن است اشتباه باشد. شاید مهم نباشد که توقعات انسان‌ها برآورده شود یا نه و آیا از احساسات خوشایند بهرهمند هستند یا نه. سؤال اصلی این است که آیا انسان ها به حقیقت خود واقفند؟ چه مدرکی در دست داریم که نشان دهد مردم امروز در مقایسه با خوراکجوهای کوهن یا دهقانان قرون و بستا درک بیشتری از این حقیقت دارند؟ محققین همین چند سال پیش شروع به مطالعه تاریخ خوشبختی کردند و ما هنوز در حال تدوین فرضیه های اولیه و جستجوی روش های تحقیقی مناسب هستیم. برای نتیجه های مشخص و پایان دادن به بحثی که تازه شروع شده هنوز بسیار زود است. آنچه که مهم است این است که تا آنجا که ممکن است به شناخت زاویه های نگرش متفاوت به و سوالات مناسبی کنیم. اغلب کتاب های تاریخ بر افکار متفکران بزرگ، دلاوری های خیرخواهی قدیسان و خلاقیت هنرمندان تمرکز دارند. آنها حکایات بسیاری در مورد شکلگیری و فروپاشی ساختارهای اجتماعی ظهور و سقوط امپراتوری ها و کشف و نشر تکنولوژی ها دارند. اما هنوز راجع به تأثیر همه اینها بر خوشبختی و رنج افراد چیزی برای گفتن ندارند. این بزرگترین خلق در درک ما از تاریخ است. بهتر است به پر کردن این خلق بپردازیم.